تأثیرات جهان اسیری. امشب هنگامی که مشغول کار پشت میز تحریرم بودم روازار تارز وارد اتاقم شد او در نقطه همیشگی نشست است اندکی منتظر شد آنگاه سخن آغاز نمود روازار تارز به گذار از اینجا آغاز کنیم امشب میخواهم در بالای ها و خصائصاری هایی که در آموزش ها وجود دارند و مشکلاتی که جز تجوگران طراق گوناگون را تهدید میکند بحث کنند بزرگترین خطراتی که در کمین پیروان مکاتب است، تأثیرات جهانهای تحتانی اسیری میباشد. بی پرده بگویم که در موارد بیشماری مجبور به پادرمیانی میشوند. تا واصلین طرق مختلف را از وضعیت های رهایی رحای جهن که در نتیجه تأثیر طبیعت تحتانی موجود در مجاری روانی خود در آنها گرفتار می آید. این مرحله از طریق جوینده را به سوی تجربیاتی سوق می که در علم روانپزشکی پدیده یادی است برای مردم متوسط جامعه امری غیرعادی عادی می شود بشر غالباً قادر نیست درک کند که مشکلاتش به آسانی به دست همنوعش قابل گشایشند مشروط بر آنکه این فرصت را به آنها بدهد. اما او مشتاق است خیش را در حال این مرموز پوشانیده و ادعا کند استادش بر زندگی بی مسلط است. این همه چیز در مکان بلحقی خیش واقع است هیچ ادعایی پوچتر از این نیست جستجوگر دریافته که به نسبت درک اهمیت فوقلادهی که اندیشه ها و عواطفش برایش دارند پیشرفت چشمگیری حاصل نموده است این درک نتیجه پوشش به منظور وارد شدن به جهانهای درون در حالت مراقبه می باشد هرچند بدون آمادگی و کمک استاد انجام یافته باشد این امر عموما در خصوص کسانی مستاق دارد که از یوگی ها پیردی می نمویند. در کمال جدیت هشدار می دهم که بسیاری از این آموزشها خطرناکند زیرا به جای تنظیم مناسب موجب ایجاد عدم تعادل لرجوینده می گردند. غالبا افکار و عواطف جوینده برایش واقعی جلوه می کنند. گاه ترسناک و شوم گاه حیبتنگیز و اغلب افسون کننده آنگاه با وجود این فتیز و کشمکشی که درونش برپاست تن به آرزوهایی می دهد او متقاعد می شود که در تصاحب نوعی قدرت است و در راستای همین باور. ی از تصاویر ذهنی همچون یک آلبوم عکس در مقابلش شکفته میشوند در اکثر این موارد قربانی وحشت زده و تحت تسلط حراس از ناشناخته قرار میگیرند. گاهی نیز برای این افراد مسجل می شود که مرگ در انتظارشان است. بعد هم ناگهان همه چیز معنای تازه ای به خود گرفته و جوه دیگری میآ. یقین می کند که آغاز خلقت طلوع نموده است از درون عنصر آسمانی ارتباطاتی هاسته می نماید و احساس می کند نبردی کیهانی بین خویش برسر و خیشه تحتانی درونش برپا شده است اغلب احساس می کند لحظه حاضر و زندگی فعلی را پیش از این زیسته است و می تواند در برهی زمانی دیگری مثلا چنگیز خان، جولیو سزار، اسکندر کبیر و حتی ایسا بوده باشد اوقاتی هستند که در قالب روح مروری بر کیهان نموده و با خدا احتحال حاصل می کند در چنین وضعیتی دیر یا زود جوینده در برابر نقاطی بغرنج در جهان درون واقع می گردد و آن جهان اندک اندک برایش جهانی واقعی می گردد. همگیزه خداشناسی متوقف کشته و جستجوگر را در بیقراری، بیکفایتی و اغلب وضعیتی آنچنان اصف رها ها که حتی قادر به مواظبت از خود نیز نمی باشد در ظاهر ناهنجاری عاطفی چندانی از خود بروز نمی دهد و الگوهای فکری و عکسالعملهایش غیرعادی جلوه نمی کنند در عالم درون به دام ازمهلال و انهدام افتاده است این را به خاطر داشته باش که در اغلب موارد جوینده تلاش می حیثیت خود را حفظ نماید و از اقرار به شکست و خطا تفره می و با توسل به تحریف کردن عقاید مفر مییابد تا از زیر بار احساس تقصیر و گناه بگریزد آنگاه به انتخاب خویش از هم خود کناره می گیرد تا در دنیای خودش تنها زندگی کند دیگران وی را خل یا و چار اختلالات روانی میپندارند و معمولا همین بچه تمایز هم برای ارضای خود ستایی و شاد کردن نفس تحتانی او کافی است اکنون به قسمت دشوار این وضعیت روانی رسیده این احتمال چندانی نمیرود روید کسی بتواند به سوی انهدام درونی کشیده شود یا نظام موثری برای سوی تعبیرات توهم و مالود خود بنا کند بدون اینکه قبلا با خطرات آن آشنایی حاصل کرده باشد اینجاست که آنها آغاز به طلب کمک می‌نمایند. ممکن است در همین تنگنا باشد که استاد قدم پیشنهاده و دست یاری به سویشان دراز کند در غیر این صورت آنها را در سطوهی مستقر می نماید که بتوانند با سود گرفتن از میزان فعلی درکشان دست به کار تفریه تاثیرات تأثیرات کارمیکی بشوند که آنها را برای ظهور حقیقی وی آماده می سازند. در اغلب موارد مشاهده می شود که در این مقطع دانشپژوه تأثیرات و تفاویر منفی و تاریکی دریافت می که آفرینش سطوح تحتانی طبقه اسیری می باشند. این یک نمونه کامل از اختلال است که نشانه اختلالات حاد روانی میباشد. آغاز کار آنها با فورانهایی از ذهن ناخداگاه توأم است که غالبا به عنوان تجلیات طبیعه و معنوی تعبیر گشته اند. یقینا تاثیر چنین تجربیاتی بر روی سلسله اعصاب یک ضربه یا شوک عصبی قلمداد میشود. این تجربیات قادرند بنیان سازمان درونی وی را از هم پاشیده و ساختار قوه تمیز و روند منطق اجتماعیش را واشگون نماید در اینجاست که جستجوگر خود را صرفاً در جهان درونی و محروم از مساعدات الهی مشغول به زندگی میابند این جهانی تازه و شگفت‌انگیز است که در آن ارزش‌هایی که تا به حال مورد قبول بودند دیگر به کار نمی‌آیند. همه چیز در خصوص وی دارای معنایی عجیب است و او فقط به این یقین دارد که آنچه در طبقه فیزیکی قرار دارد واقعی نیست. در اکثر موارد روند ذهنی فرد سرعتی یافته و افکار و تصورات به درون ذهن هجوم می‌آورند. این تأثیرات به صورت صداها و تصاویری احساس می شوند که گویی از منبعی خارج از وی در جهان بیرون نشعت می دیرند. به طور کلی جوینده ممکن است تصاویری تیره و غضبناک از فجایع کیهانی ببیند که در انتظار وقوع می باشند یا احساس کند ناجی معود است و تمامی معادلات کیهانی از درون قلب وی عمل می کند. و چه بسا که این افراد رسالت هایی از این نوع را به عموم مردم اعلان می کنند غافل از اینکه تنها موجبات تمسخر خود را فراهم می نمایند از جمله واکنش های دیگری که در خصوص این افراد معمول است افسردگی های عمیق احساس گناه یا عذاب وجدان احساس قصور شکنجه خود یا خدازاری و قبول مسئولیت است که در مقیاس ملی مطرح میباشند در خلال تمامی این دوران بغانی جوینده صداقت قابل توجهی از خود نشان می دهد و ظاهرا همه چیز را درباره خود بیان می کند هرچند برایش آزار دهنده باشد او معمولا قادر نیست از حرف زدن پرهیز کند در جهان معنوی او مردم را به ترتیب زیر دسته بندی باری به هر جهتها خودفری پردگان وحشت زدگان ارتجاع و مردم ساده اکنون بر پله دیگری از طریق قدم میگذاریم. در جهان مذاهب اده بیشماری می به علت ناهنجاری های ذهنی، مدعی شمار بالایی از تجربیات مذهبی باشند و در خصوص بسیاری از به نوابق مذهبی و عارفین نمیتوان از این تشخیص صرف نظر نمود که صاحب سخن یقینا بیمار روانی است اکنون باید بگویم ما تا نقطه ای از طریق معنوی توسعه یافعیم که یک آزمون حقیقی در برابر خود مییابیم چگونه باید تجربیات سازنده و حقیقی طریق خداشناسی را از تجربیات ویرانگر جهانهای روانی تمیز داد؟ یکایه که ما ملزم به یافتن پاسخ این سؤال می باشد